و آله قیبین و قاهرین و و لحظ دارمت و علا عجاله مجموعین اللهم در زن تعبد بود افتران شد که در مجموعه مطالبی در اصول در تاریخ اصول مطرح شده زن مرادشون از زن در مقابل علم یعنی اونی که دلیل از کتاب سنت داره زن یعنی اون چی داره که مشهد یا فبید با مراجری به شواهد بشنید رسه این زن و اون بحث معروف تصدیب و تخت اساسا اساسا این بود این این بحث رو میداریم بعد از بحثی که اون داریم را جبه اون جیهد زنی که استباقا علمای ما مفرحی و از که این بحث از قرار اول بعد از رسولم کبرم اسلام از شد و این که در کتاب احل سنت اگر ملاحظه تا همونجا باشیم بحثی دارن که آیا پیغمبر هم اشتحاد میکرد یا نه به بحثی انگلیز دارن احل سنت محامد داریم تو کتاب موجود موجود مرادشون از اشتحاد همینه اون اشتهادی که در کلمات احل سنت آمده یعنی در ای به پیغمبر ورحی نشه پیغمانبر رو قبائل اون حکم در بیارم با اشباه و نظائر بشه نه اون نه سنت رو ما جلد میدونیم که پیغمانبر جلد فلا اینشان ها انتون می کنم بحثه بردی سنت رو اونها احکامیست که پیغمبر از قرآن گرفتن اما ما نمی فهمیم اما این یعنی میگرد ادهی از احکام در قرآن هست که ما میفهمیم مثل احمدالله ها اما ادهی از احکام که مثلا به نقیدی همه هست ما الان از قرآن نمیفهمیم اونا میگن پیغمبر اکرم سنت را از قرآن میگه بسید لیکن که ما ملتدر نیستیم در رواییات ما داره که خیلی سنت یعنی جبل خود پیغمبر خود پیغمبر تا من صابرن تو دیرات یعنیت پر شد تو به مناسبه تابر و تنجیب در جا هم صابرن اونتر است این باز نمی در محلات اما این نه بحث سریعی نیست که از برام خود شخص پیغمبر اکرم مثلا از عمومات آیات مثلا این با موسیقی آیات هست. هم نجایت از مجرمین کلمات پیغمبر در بیارن که مثلا در مدینه باید مجرم نوی که مؤمن این باش پیغمبر هرکم کرده کردن استظهار کردن از اطلاقات کتابی نه اطلاق و حصولی بخص و حصولی توش نیست مثلا از این آیه مبارکه اینطور طور مثلا اپا من کان مؤمنه که من کان فاسمه لایسته اون خب گردن عدم استباب چون پیغمبر زن در مرض وفاتشون سه تا مطلب فرمیدنه که مشکین که مشرکی نوید بیرون کنید مثلا بگیم این مطلب را پیغمبر اشتهاد کرده نه این که بود یا مثلا نقطه نه اشتهاد پیش شما اشتهاد و در الله اینا مطرح کردن در کتب اهل سنت فقط این به اینکه آیا پیغمبر اشتهاد میکرد یا نه اشتهاد مراد اینه اشتهادی که مثل میکنه مسیه مثل مسیه مشهود و احکامی که موجوده حکم غیر موجود در اون برای هم بهش خود پیغمبر هم اصطلاح روشن بشه این پس مراد از این زن در اینجا نه زن اصطلاحیست ولی قد در انسان پیدا بشه به این آیان کمستو او، ولو این پیدا بشه این در اینجا مراد خصوص مثلا خدا که زن نیست اصلا بگونی این حساب اصطلبات مثلی که آبای انسان از ته زمین از ته شادر بیاره اینه اسمین رو استنباس رو بشن حالا عبارتشون رو برمیشون رو میخونیم چون الان جای این بحث اون وقت تو این بحث که وارد شدن یک آیا این زن مشهر رجبی یا نه و مرادشون از بجیه در اینجا مسئله تشریع نه کاشفه به یعنی اگر مشهر چین حکمی کرد نه چیم. مثلا ما دلیل این خودش خود بین نفسه از مصادر تشریعی که بیاز مثلا یا استصحاب دو این که این روی مقدار زیادی منعجر کردن اینطور خیال نکنم که هر کسی برای خودش هر چی بخواد بگیر مثلا یه مقدار انزواش بده کرده اسمش خلاف استصحاب میگن صادرا بوده حالا شکل بکنید در بقایش یه مقدارش وجود شبهه اون شبهه رو نمیدن اینقدر این فرانت درست که کاملا مثلا استنباد بشه علت حقیقی همه یه مقدارش مثلا مرزم گفتن که میگفتن یه مقدارش استهتام در ازم اینا معترض بودن که میشه با احکامی که موجوده به انحاض مرسله مواردی که در احکامی مسئله دوم، بعدم اون شخصی که این کار رو میکنه برای شرایطی گذاشتن برای مشتهد داره این طور باشه این محدم که حکمی رو خونده باشه این قدرت, باشه، قدرت فرو داشته باشه قدرت طرف دفروه برای داشته باشه یک نکات رو ولی از خرمدی روزای بردم اینشالله میخونه باشه برای همه صحابین قدرت نرد هر گذاشتن بین کسی که محدثه و بین کسی که مشهره تصریح میبرم مثلا که ابو حریده مثلا مشهر نیست اما معدثه شالله به مناسبت که هم میشوند برد دیگری. مثلا اتعال یا آیشه فقط محدث تحدیث میکنن از رسول الله یا خودش یعنی همین عمل که استنباز باشه به این معنی که از کردن او انجام میده از عبارتشون معنی میشه که آیشه رو فقیه میدونن نه اینکه در حده محدث و راگی حالا این بحث که که که خواهد من اون شرایطش. بعدم باز آمدن حدود دیگری مثلا گفتن اگر جای قیاس بود به خبر ظریف بود آیا قیاس با و خبر ظریف مقدم قیاس مقدم یا خبر ظریف بود در این مسئله خیلی صحبت کردن این سعی که ابن هر موارد اختلاف کم چند بکنن و جوری بشه که مثلا فوقها به یک نتیجه برسن که قبیعتم خب اختلاف پیدا میشه یکی از مشکلاتشون رفع این اختلافه که رف وقتی این اختلاف بشه. خیلی های که آلو به تخیر در بعضی از خلافاتی که منموده رسمش ولی این بوده در تاریخ هم بوده باشیم میموردن پیش خود خلیفه و اون وقتی گوش رو میکرد مسلمان دسته که گفتن وقتی اراق رفت کردن امیر میره رساله و بعضی مگفتن این رو برای مسلمانها ها قرار دید منافعش مسلمان ها کسی کس ازده هم می گفتنم این نیگاهی که رزمنده بودن اینجا رو فرد کردن تیکه تیکه شدن زمین رو یکنه تقسیم بکنیم از بقیه هموان یک ماه داره در ورده اوارا رو بحث میکرد با این دو طرف خبین قبول آخرشم تعدید رعی علیه زنده تارد کرد که زمین رو خلاجی قرار داد اصطلاح ما زمین های درامد زاد زمین های درامدی خلاص یک درامد زمین های در این هم بوده حتی این قصه که زیاد داره میبرشیم که در وقتی یکی اختلاف شد پیش خلیفه بردن خلیفه که اصلا آق جو از حادی جواب پرسید که اون شرطه انگوش این این بوده که مسائل مهم رو بر رقب اختلاف پیش خلیفه میبردن و خلیفه بوش میکرده و بعد حکم نهایی رو صادر میکرده که اختلاف به این هیچ برداشته اختلاف، اگر خدا هم تو داشتون نحر بلابن یکی از خطب هزار اشاره به همین مکنه درد. خیلی اون خطب اون با اینجور شهر خاص خودش عرضه کنم. شد کمتر به شهر رسول. این هم راجبی به این قسمت. و وقت اساسیش شوی حجیتش بود دیگه از اون بالاتر نحره اینجور مسائلش رو تحلیل میکنه. یه تحلیلی که مختبه های عقیقه ها اونجا میدادن. ما بحث تو مسئله حکم نه در کتاب نه هر چی که این مشکل رو حکم الله چیزی که این با شواهد با قرائت که کنه است با اون شواهدی که گفتیم جنب جایی حکم الله دیگران هرگزان اختیار نمیشه به حکم الله متعرض بشه حکم الله یکی باشه وقت آمدن توجیه کردن که مداد بودن چی این دو مکتب معروف و بعد ان چون بعد میخوام مصراحه این بحث رو بشام. انصاف غضیه. اونی که مناصب و اختیارات قانون تو قانون هست و خیلی اثرش هست که اینو در اختیار یه گروه خاصی مثل دادگاه‌های قانون اساسی یا مثلا مجلس تشخیص مصلحت نظام یا مثلا شورای حفاظت از قانون یا شورای قانون‌گذاری یا مجلس ترفیعی اصطلاحات مختلفی دارن که مواردی که در قانون نیامده چجوری اینها اثر استکشافش رو کنن. این یکی و به ذهن من اینه که اگر اصل اون مطلب رو قبول بکنیم که اینه احکام نبوده به ذهن من همون تزویر معبولتره تا این رعی به تخته همون تزویر یعنی بزرگان معتذله که احلی گرم هستن این رو یعنی حکمی نیست چون حکمی نیست همونی که مشکل استنباد میکنه میشه حکم الله انصافا متعددن تو غالب سخیر باشیم دیگر اگر دو سر، یو داده روی شده خلیفه مثلا وضعی که من عرض کردم مثلا به ذهن ما که اون چی چیزی نیست و این اشکالاتی که کردم اینجا بر اون استاد در باب زن تعبده به زن و زن حرام میشه تحریم حلال میشه اجتماع گرفتن میشه مثل مثلا اینا متضاد یا اصلا اونجا مطرح نیست مثلا مساله مطرح نیست چون حلال نیست که اصلا بشه حرام نیست که حالا بشه چون هر ز کاری که این کسان نه اجتماع مثل میشه نه اشتمال ز دین چیزی زات میش یک چیزی هم که مشه که اینا سرکر در این اشکالات رو این تلر کن دلش که این بحث نداره اصلا رفت رب... در اینه بله لذا قابلیت اشکال برای معنا این است میگن همه احکام بوده همه جواب طلب غلطه در روایات ما و این رو باید عرض کردیم اخصاص ما نداره از همون زمان صحابه امیر مهمی اعتقادشون که همه هست اونا چون نمیخواستن به وسایت عمل بکنن به وسایت عمل کنن مشهرشون این بود اصل مشکل این بود و لذا هم حاضر نبودن ارجاع رسمی به امیرون چون ملازم با وسایت بود ام. هم قران رو که از نظر کردن. دادن سنیون وقتی بردن در مجلس قبول نکردن و کتابی هم که از نظر داشتن نوشته‌ای که نظر داشتن بهشون میشده بازم قبول نشه. پی مصنف عزالدزا نه اون میکنه که حتی وقتی عثمان در محاصره او از همین نشالی برای فرستادن فرمودن ببین کی بگو مرد اما ما به این نمیشه عمل میکنیم که مردم بلکنن. این که دربار که اصلا میخواستن رو بخشن. اینا به عثمان برگردون گفت لا حاضر فلن و الا کتابه ما به سر اختیار این اینه میشه حتی زمان عثمان هم چون خوب عثمان بزرگتر بود به قول امزیمون با تنوع نظامی هم بود حالا شاید یاد دیگه تو کار برای جهت تهرائی در کار بخاله داشته. در اعظم به هر حال این دقت بکن این مشکل اساسی این نیست که مثلا در روایا دادن از همون زمان صحابه مطلب مطرح شد در اجزاع از به از سنت هستند به ضرری که قائل نشوند به خلافونه که نه که ریاض کردن نه که اجماع کردن اونا میگن همه اقسام در کتاب و سنت هست ما فقرت ماف کتاب میشه ما منشی اینو قرر بکنید در جنة و یبعدكم عن النار الا وقت کن به. این دوره که معروف نیست ادعس رضایت اصول پیغام بر فهم بر هر حال تقسیمات اشکال مون تو اینجا نه بحث تحویل حرام نه بحث تحریم علاقه اشکال اساسی این است که خود زیربنه خلطه خود این زیربنه و خود دردت بفرمید این اشکال ما هم قابل حل نیست با قول مهمم آیا چونسی نفسوانی لادو سمسام عزیز منتقه خیلی دیگه هستی مهمیدی قابل حل بیست چرا؟ چون اونها میگن چونگی علی اینو علی ساله با هم گفت نداری؟ دوست صحابه هست این یکی از مسائل مذهبی این مسئله مسئله اختلاف بین دو مشهد میه این جزء مسائل مذهبی در دنیای اسلام اونا میگن بله شما اینطور دوست من علی بن ابی طالب جو اما ابوالحارث میگه گفت ابو بکر میگه گفت عثمان هم اینجور گفت از عاصم هم اینجور گفت لذا ما بین مسلمان ها این اختلاف تجلی پیدا هجل. کرد شیعه دیالوگ از ما یعنی سنت گفتن که یا سو اقمالص کلا باطله چون کلا باید برگشت رو کتاب سنت بشه اونها گفتن نه این راهی که دارید میگه در اینجا این بحث حجیت زن زن به معنایی هی در کتاب سنت نیست این بحث حجیت زن نه اون اشکالاتی که نقد شدن که علیرغم اینه حرام بود که اون عالم نداره و خود من اعتقاد امینه که اگر این پیش فرض رو قبول کردیم. این یعنی کردیم که احکام نبوده هیچ مشکل نداره که شارع بیاد بگه این وظیفه رو به عهده علما فقه ها گذاشیم که اونا بیان استنباط مواردی رو که درش احکام نیست به مردم بدن مشکل نداره در من مشکل الان تو قوانین بشریه ما مشکل خاصی نداره مشکل قانونی نداره اگر واقعا نباشه مشکل قانونی نداره هیچ مشکل خاص نداره صحیح هم تصدیقمون که عرب گرا همونی که و و دیگران همونه که چوبایی و اولد بافدانی و دیگرا انصافاً صحیحش همونه. البته یک مثال دیگه میبینن. ها چرا اون بحث دیگه‌ای که بیشتر غلطه؟ امیان احمد تلکون دینتون با این قشعر نمی‌سازه. اما بحث سر پر یعنی اشکال ما در آقایان ایناست که خیلی خیر اخلاق برداشتایی که ما داریم و چه شوالیه کتاب چه شوالیه سنت چه احوالی که اهل بیت که به تدبیر خدا الله کتاب الله اسدی اهل بیت اینا اتفاقش اینه که ما احتیاجی به هیچ خود از اینها ندید چند تا روایت ببین در همین اصول فقه ذکر شده که امام راحدی یک جا آورده که امام صادق و امام باقر اصر علاوه ما اهل عراقی نیستین چون عراقی نیستین ما اهل رأی نیستین همین تحصیلش میکنه عراقی لوکان که از اولاد امام صادق و ما هر چیزی غیر کتاب و سنت توی عراقی ما نظر نمی پس این مطلب که هر اصل این مطلب اینه که قدمتون هستن و برچون بحث ترسید رو هم اشاره کردیم دیازه درونو بیامونه یا میتونیم آخر بحث هم میتونیم به اون بحث ترسی خود یه بحث دوم راجب که زن اون چیزیست که مفید علمی مفید مفیده, مفیده قرقمی و این از قرق دوم مطرح شد و عرض کردیم دو, دو مورد شدیه اساسی بود یکی راجع به ظهورات چرا؟ چون ظهورات رو مثل یک پول به مراد متکلم میگرسن یعنی لفظ گفت این الکرام در خواد و این نما جوه الاللسان الالخواده دلیلا لفظ رو تاریخ برای مراد میگرسن و مثل این تاریخ زنیه و سر این تاریخ این تاریخ زنیه, این تاریخ زنیه. یکی اینجا بود یک پل دیگه از که مدره مثل سال 150 تا زمان رسول الله اسم شد قدر واحد مگمتن این هم زنیه من از فلانیش او از فلانیه از, فلانیه از فلانیه. این که میخواییم بزنین از سال 180 تا زمان رسول الله این هم زنیه یعنی محیل یعنی نیست دو چیز خیلی محل کلامشون بود که باز هم بیشتر هم دومی بود که خبر بود. درسته در قرم اول خیلی هم خبرها کار بکنن بینیزن اما از قرم دو هم مثلا حتی از اوائل ها برمون یه اشتباهی کردن ای کاش های تدویم کردن درشته بودن به مشتلات کمتر برخواد میکردن اونی که منشه شد بحثی درست بشه بحث خبر بود وقتی بحث های خبر آمد مشهور بین مثلا اهل سنه مشهور شد که این حکم مخصوصا و مهد کلام خود دقت بکنید خاموش نشه بده ان شاء در اثبات و بطلان الی نه موضوعی خارجی مثلا آمده روایت آمده گفت نه نبی عن القران هر معامله قرانی باثی خب میگه این بود اثبات در جعفران که نه آمده مثلا جعل النبي في الغاب مثلا شیاط نه این باله الان مولا مثل میشه ابن حد ابن حد گوید شارغان میگه اگه شما معاملهی کردیم معامله تامده ولی ده برابر از این مسئله شد تمسئله کنه با اوپو بروگو یه خیال غمت رو روز نهیم یعنی بحث سر این بود چینا میخواستن با خبر واحد دقت میکنی حکم ثابت بشه این مشکل کارشون بود چون بودن حکم الله باید با یقین یعنی درست بشه؟ اگر یقین یعنی نبود ما میتوانیم احکام الاره رو ثابت بکنیم همین قصه معروف که شنگه باشید. از کنن با. یه زنی بود دختر جوانی هم بگید. که در سالش هم بوده. خب این مسئله هست شوهر است تلاقه شمی کنه. شوهر می من. بعد این می تو خونه شوهر بانان مسکن هست که اون منحیز و سکن تون منوش رکن. بعد اون طرف اشکال کردن که نه تو طلاق باین هستی. یه حقه مسکن نداری. حقه بسا نه بالاخره به رسول الله (ص) این که گفت نه تا ندیشون طلاق باعل نده. فاطمه بنت قیس اسمش. که بعدم به چه دیگه بود رافیه دیگه تردشامو تو بحث باشه. پیغاماتشون میگیرش دادن سلاله دوست سلم سلاله برشتن ایشون یه معنی میگیره. چه به سازیل اصابه. علاوه بر اینکه این بحث از همون زبان صابو نامه کلامه. این تصادفا نه زبان تهاورد. فاصله و زندگی نکوه رسول الله زن که در ایده خلاق وائل باشه حق نفقه و مخشه نداره. عمر خودش مخالف بود، یع مخالفی بود آیشه بود. عایشه رو بیخود این دختر بیخود زنه که بیخود قضاای زنانه گیر هر این این دن بدنما بود و میکرد و برن می‌کردن واسه از خانواده شوهرش یه بروم. این زن تو مطلقهش وجود زندگی کنه. از عمر عبارتی نقل شده که خود سنیان متحیرند میگفته لا نقش و قول الله قول النبی کتاب الله لقول امراة لا ندینت یالاملا خب طلاق باین تو قرآن نیست می... اصلا تلاق تو قرآن نداریم سه طلاق طلاق باین میشه این تو قرآن نیست می... این توسل کذآور به اطلاق اصله اونها این آیه مبارکی که از کنوه هنرکه اینجا اسکان محکنه لیکن شامل کل نظره میشه این آیه مبارکه در طلاق ازده رفیت بسن تو طلاق با نیست دقیقه کنید اما لا نسخ رو کتاب دارم به ما این روشن شد چی شد؟ پس این بحث از همون زمان صحابه هم محکنه غیر از اون بحثه این بحث این بود که یک نظرهای سهه بیاد بگیم من از تیغنبر این جور شنید قول عمر این خلاف ظاهر اطلاع کتاب باشه میتونیم شریعت رو با این ثابت بکنیم یا نمیشه میتونیم شریعت ثابت بکنیم الان هم دیگه سنی های اختلاف سیده این حرف عمر قبول نکرده، طور با تمام حرف عمر قبول نشد طور با از عجایب بینه که اصلا تکسه ای نیامده کلن طور وقت سومی ها خیلی سریعی تصداد دارن او مفتفل نمیش بود بحثانیز متعدد و متون متعدد و بحث دستی آترابان اما چونه باعتماد که متلقه بائن نفقه نداره نسخنم نداره پس این بحثی که بود این بود آیا ما شریعت رو میتوامیم با قول یک نفر ثابت کنیم؟ هم قرن دوم که این بحث دیگه جدی شد چرا؟ چون نوشتار نمید مشکل به خبرواره بودی آزده خبرواره از کدر مشکل قرن دوم وقتی به تدمیه افتاده نوشتاری به اینجور موجود ندون نوشتارها من هم ندردن و محدود بود چند تا نوشه از پیغمبر یمن نوشت رو بودن این زیبن آقا کن. همسی کنم چند تا نوشته. وقتی افتاده افتاده, افتاده به نقل حد و سمایی هم بود شفایی بود این از اون اون از اون لذا در مقابل ادهی از به اصطلاح ما اموزیوم روشن باشند بکنه اقلی گرام ها آمدن گفتن او اصلا تعبده به خبر نمیشون اصلا شاره نمیشون تعبده به خبر داریم اینشالله عرضی نکنیم تو بحث حجر به خبر واحد اون لب به لب به دلیل اونها مثل آیه نظر بود اینجا اکن خواست کنون تقریبا میشه گفت مهمترین دلیل بین عقس و حجیت فوجی از این دوها بود یکی این آیه نبع بود یکی هم سیره ی اصحاب قیمت برد در عمل به خبر سره که این شانا عرض می کنم در مقابل عقیدگراها که به اصطلاح هم با بشونگیم معتضله این آنگر گفتن نا پارون بالاتر گذاشتن گفتن اصلا مستحله. که به این جمعه مثلا ابن قبه اگر ما باشه از معتده نباشه، ابن قبر همین این حرف داره استحاله ای که اهل سنت گفتن معتده این آمد تو کتب ما پس در حقیقت اون حرفی رو که ابن قبه گفته راجع به حجیت خبره یعنی راجع به حجیت زنی که از یک طریق حاصل میشه نه خودش از مسادر تشریحه مخانه شأن و قضریه دقت بکنید این اگر مفید زن شد اصلا ممکن تعبد به شنان کلا دیو پیروزان زده گذاشن اجماعا عبارات مرحوم استاد روخندی میگه من دقیق این عبارت رو خاطر خیلی چندان مصیله ثمر هم نیست و این جور بحثا به نظر ما خیلی فایده نداره ببینید این عین این مطلب رو اولا از کتاب عامدی، حال احکام آمدی اما این جلده چنده جلده دوشه اما این که شماره گذاریشی پشتره هم کرده شماره فتحه شدیست در اشتاد و پنگ مسئله در خبر مذهبول اکثرین جواز و تعبد به خبر الوارد عقل اقلم خلافن دل و جماعت در متکلمین در اهل سنت زیاده پیش ماه این نجا برد متأثر اون مکتب بوده مطالب رو آورده و دلیل و جمازهی اقلا شبیه عبارتی است که شبیه هم شیخ انسایی داشت اگه آسون باشید لوف که برد عبارت شیخ تا که باید دیگه هم شاکن آسون بودن درسته این شبیه همونه لوف هر از اونا شاره به تعبد بله عمل به خرر الواهد اذا خالب على من زن این زندی به این معنا یعنی 70 در مطابق بابه لم یلزم ان هو این زادت استحاله عقلی یعنی امکان ذاتی بقوله او ونا معنا العقلی چه غایت غایته مایوقت در اتباعی هی احتمال و کونی کار دبن و مفتر یا دو, دو گفتی شما گرد این نیست که مستحیل باشه و داره که لایع نامن از به دلیل اتفاق ناعل تحبد به عمل به قول مفتی این مال اون زنده اوله به قول شاهده فرق این دوستا واضح شد یکی توی احکامی که تو موضوعات. آن به قطعه. یعنی می‌خوای بگی تعبد به و واحد اشقال نداره تو احکام اشقال نداره تو موضوعات اشقال نداره تو احکام به مولا المفتی تو موضوعات بلعن به قول شاهده. این هم تو موضوعات پس هیچ مانعی نداره روشن شد هیچ استحاله‌ای نداره چرا چون عدم ددی برای امکانش وقوع اشراقی دیدین واقع شده پس این در فن حالا البته فنی که الان دیدین آیه خدیو دیگرا ایی کتاب مال ناله من زدم خالی شیتده هرسدید شم این تو خودش هرسدید برد تو این نه آن نهول وارد شر آبدالک لمس کردم این مهالون و آن ليس نیست مهالن زاده لاکن نه مهالون عقلان به اعتبار امر خارج انجام اون که استدیکشین به اعتبار و داره که الان تکالیس مبنی یه مساله همون تحلیل محلالو تحلیل حرام یا حرفی که مساله هست مبنی یه سوال مساله و دخیل مسال متفاوتی خالو تأیید نه به تبع خبر رال واحد و لعمل به که الهات بر به خبر ان رسول الله به صدکدمه و استحلال بضع المحرم ما احتمال کومیهی کاو را مثال اینکه به چنیمتون زده این زدی گفت پیغمبر گفت اومد گم نمیشه با کتاب الله گفت می‌خواد یه زدی حبی گفته اصل نمیشه با که آیش کی میگه نه پیغمبر کی گفته که این بذوان بود اون خاویل شوهره که اجیت میشن پیغمبر باجی خونه برو که چه بیشیق بود نه زنتو ایام عزت بل ليس تطابق خصوصا از, از هم این شبیه اون من احتمال کو این کار بند علای خون و فعل عمل ذ المقتضا قوله بل, بل و هو خلاف و لهذا امتنع ورود و تعبد امتنع گرفته محال محال نیست ورود و تعبد عمل به خبر خاصه و صدی فیمایت علق و احکام شرعیه و اما ما زکرتم امونت تعبد به قول شاهده بعد بارد بحث فرد بین شهادت و بین بله بین شهادت و بین خبر واحد شهادت از لین بعد دومرتای وارد بحث دیگری میشه که حتی اگر قبول بکنیم که جایزه ما معارض داریم خوب دقت بکنیم در عبارات متکلمین ما اصولا وقتی بحث عقلی میکنن به عقلی صرف اتفاق نمی کنه هم با روالات و جمع رو مثلا گفته ام من منقول فالو تعالی و مالای سیلک بی تو بحث به علاوه باید قایم ان بحثه ذی بینه ها تا سنت حبرواز و قول و انت و علی الله مالا و خور رو حتی حالا این حق شیعا که در عبارت اصحاب مان برد و اما المعبول هم این وجودی بارد این بحث در مقام دیدیم که عبارت مرحوم آیه خویرم هم خوندیم در مقام اجمالت اینه که این بحث و مراد از امکان و استحاله نه اون امکان ذاتی یعنی اون مستقیل ذاتی امتناع اضافی و مرادشون امتناع است. این مرادشون امکان به... به امتناع به لحاظ مقام اعتباره. یعنی با در نظر گرفتن کیفیت اعتبار. خلاصه حرف اینها اینه. شو... ولی ازام اگه اگر بکنه همینجا نخونده دیگه روز. خود آمدی جواب که میده. مثلا میگه دفعه مخلح محس... دفع هست میشه. میگه ما حال و مخلح هست مثلا حال و میشه. یعنی به از این اخترام من سریعانیتون وقت تمام شده فهرستباه این دلیل اینها متشکل از مجموعه مقدماته که اینا تمامش عقلی صرف نیست این نحوه بانون گذاریست یک خبر شنش فریقیت صرفه اگر بگیم نه خبر محسنه مقبل بگیم شنیت صرف ندار فریقیت صرف ندار دو احکام تابع مساله و محاسده خب اشاغل قابل مسال و مفاتد سه این مسال و واقعی هم. با علم و جهل ما عوض نمیشن باشه اینگه این فرص, این فرص من نمیدونستم دست رو داشتم دست رو داشتم اون تابع واقع خودشه علم و در اون تاثیر نمی کنه. سه علم و جهل چون صفت طریقیت محل... و کاشفیت دارن طبق جزر جهات محسنه و مقبهه نیستند. چهار تعبد به معنای این که ما به عمل بکنیم یعنی به اصحان خبر واحد گاهی مطابق واقع هست گاهی مطابق واقع نیست پنج اگر شارع اجازداد در جایی که مطابق با واقع نیست تفریت مصلحت میشه یا جذب, جذب مقصده میشه و اینها هم واقعی هستند، و با جعل جیت تعدارک نکرده این نقطه م. حد <تصفيق> سالآوری دقت کرد هفت تا طلب طلو هم گذاشته <تصفيق> این مراد از انتنناوع استال است امکانه. یعنی اگر کسی آن گزارش این تولی بود همین شود که برتون عرض کرده. این خواهی نخواین که ممکنه حفتقبول آ زندگی که معده راخخت داده اناضبط راخخته، اگر این هفت باقدم را با قبول بکنید؟ هم با اینوز خوبی امتران بده خبر تنیر صرف باشه احکام خابه مسالح باشن مسالح واقعی باشن علم و جهر جهات محسن و مقبه نباشن تحبود یعنی عمل کردن به این خبر حتی در صورت مخالفت در صورت مخالفت جذب محسده یا دفع محصده خواهد شد وقتی میگه خبر حجرته تدارم نکرده یه مقصده آمند یه تدارک بکنه باید مطلب خود اگر تدارف بکنه خود مطلب خود تدارف که نکرده این هسته مقدمه لذا مثلا آیسوی همونه مطلب در تصیبه چیه تدارف یه مجکل نداره اگر کسی میخواد در اینها اشکال بکنه روشنه شد بچه اشکال چیه این مقدمات در ذهن انسان بیاد این مراده از استحاله با این مقدمات نمیشه تحبت بکنه با این نکاتی گرد کرد باست. هر کنون شد چه پیدا بکنه این کنه زربونه هم باسته مثلا ادهه همونه گفتن قیام خبر موضوعیت داره اینطور نیست که فقط طریقیت صرف باشه این مسال و مباسده قاهل نیستی اون مسال در جرد اینه در مجیبون قیام خبر خودش جزوجهات محسن و مقبله نیست مسلحت مسلحتی که پس شده شارع تدارکش نکرده یا مقصده ای که بیدت کمونده یکی از این مقدمات مورد خرچی قرار دیگه اون دلیل لذاب به ذهن ما مرادشونه از امتنا و امکان اینه نه محال لذابه محال و یعنی اگر ما این مقدمات قبول کردیم چه مقدمات قبول دارن اگر این گفتیم نه جعل جیت این تدارف اون مقصده تداریت مسئله پایزه خب به چه کار داره؟ خوش شله داره که؟ اونا میگه اگه با خبروهای بودید تداریت نگرده چه تداریت اینجام داده؟ پس بنابراین شده بازه کسمت باز شد پس تا امروز این بحثی که آقای خویی ورموندن دیگران محال ساتی محال عقلی و پلان هیچ کدوم اینا مراد نیست. پس این بحث زاکی اینجا مراد این است که شما بیاید نحوه قانونگزاریتون رو بررسی کنید اگر قانونتون دارای این قسمت ها این نمیشه این قسمت ها توش نیست میشه این نه مراد محال ذاتی و مراد امکان ذاتی است این یک نوع امکان تعبدی است این میخواد بگه اگر شما این مقدمات قبول کردین امکان نداری تعبد بکنه امکان با این مقدمات راست راست یکی از میگه بله امکان قبول <سؤال> باشه که مقدمات یک دو تا قبول <سؤال> باشه <سؤال> سه چرا قبول نذاره قرآن بولسه. روش اصل <سؤال> مطلب ایشون یک بحثی که اجازه ذاتی اون میگه یا پیدا الهی ذات اون هم دیگه حواث اجازه نمی. صلی محمد